و یه دختر سه ساله شما در اون پرده من از خانوما خواهش میکنم اگه توشون دختر بچه های ساله هست دقت بیشتری بش بکنن شما هم تو ذهنتون مجسم بکنید من میخوام امشب به زیل انایت این دختر سه ساله ابی عبدالله خیلی امید دارم که امشب یه انایتی به ما بشه انشاءالله امشب انشاءالله مرحمت این دختر سه ساله ابی عبدالله شامل حال همگی بشه. بگیرید دامنش رو اول دردهای امام زمان و در نظر بیارید دوم اصلاح درون خودتون رو در نظر بیارید آقای دختر سه ساله از مدینه خوائفا مترقبا تا مکه اومده مکه چند ما رنج گرفتاری مشكلات باباشو دیده از مکه تا کربلا اون همه سحنه ها رو تو راه دیده کربلا آشورا رو دیده قروب آشورا خیمه را آتش زدن دیده دامنها آتش گرفتن دیده امر و انگونه و امام سجاد و انگونه و ابدان شهدا رو اونگونه و شطور سواری اونگونه رو دیده آوردید در مدین کوفه تو کاخ ابن زیاد کنار کاخی خرابه درست کردید این زن و بچه‌رو تو اون خرابه حتی این کارو کردن غذاهای خوشبوی گرم خوشمزه جلوی اینا می پختن میدادن به سربازا به اینها نون خشک میدادن به قول خودشون اینا خیال میکردن بنده شکمن اینا رو بیازارن به این که نه روز در کوفه زندانی کردید حالا سوار بر مرکب به سوی شام من وقتی دو سال قبل از کربلا به شام می اومدیم برخی هم سفرات تو جلسه هستند با اتوبوس آب یخ و فلاکس و تشکیلات و همه چی همون مسیری که اوسرا رو از شام به کربلا از کوفه به شام آوردن همین مسیر الان از کربلا به شام میاد تو ماشین وقتی از پشت پنجرین خار بیابونا رو می دیدن این صحرای سوزناک کبیری رو می دیدم. به همراه تو اتوبوس میگفتم ببینید ما با آب یخ اتوبوس اوتوبوس کلردار و غیره همه خستیم این دختر سه ساله عبی عبدالله این همه را روی مرکب بارها به زمین افتاده والا اومده گاهی بغل کردن گاهی تازیانه زدن حالا ما آوردن تو شام تو یک خرابه پناه دادن دیگه تحمل این دختر تموم شده بهانه گرفت مهمه جان دیگه بابامو میخوام صدای نالش بالا رفته حالا یا سر به نیزه زدن یا در طبق گذشتن آوردن یه وقت چشما میکنه سر بریده بابا رو ببینه سر رو در بغل میگیرم بابا جون معمولا بچه ها توقع پدر پدرها دخترها رو در آغوش میگیرم ولی حالا من دختر سر بابامو در آغوش میگیرم میگه بابا جون زبان حال اگر بگم بابا جون ببین امم و چقدر زدن بابا جون مثل که در امت جد ما رسم سیلی بزنن مادرمون زهره رو سیلی زدند، امم زینب رو کتک زدند و مرا میگوید و میگوید یه وقتی دیدان صدای رو خاموش شد خدایا دختر خوابش ورده اومدن دیدن سر یک درم، روغه یک درم، زینب الله علیه و اومد، گم قصاله تعود کنید بیاد خدایا حلی رو شب دفت کردن، فاطمه زهرا رو شب دفت کردن، ای دخترم میخواد همون شب دفت کنه قصاله اومد، بدن رو تغییر و کرد قسل بده گفت بزرگ شما خانوما کیه زینب آمد جلو گفتان نگیدین دختر به چه بیماری از دنیا رفته که قسلش نمیدم این دختر بیمار نبود برای چه گفت تمام بدنش کبود و سیاه